اللهم ارحمنا رحمك يا رحمن يا رحيم بحث در مورد روایتاتی بود که شهر بذ شد ولی در کتب عثاب یا غیر کتب عثاب در بحث حجیت خبر واحد به آنها به اصطلاح و تردع کردیم که در اول مرحوم آی بروجهدی به در اول جامعه حادیست اونها رو جمع ولی کردن سال و سال در اول باب قضا جمع ولی کرد این خدا کتاب مرحوم آی بروجهدی ارز کردی میخونیم این روایات ارز کردم که مزامین متعددی داره و مرحوم آی بروجهدی هم به صورت دست بندی تقریبا هر ها یک جا به هم کنه به صورت طائفه ای اوگردن یه طائفه دیگری از راکه یه طائفه از این من سرینی کنم سریع از شرک بشیم یه طائفه دیگری از روایات روایات عربعین حدیثه من حفظ علاق اومدی عربعین یک طائفه این طوریست که به عنوان عربعین حدیث به اصطلاح آمده این جمله از روایات این بحث عربعین حدیث در کتب ما هم موجوده در کتب اهل سنت هم موجوده به نمی رسائی هم در این جهت نوشته شده حالا کتاب هایی که به عنوان عربعین یا عربعینات اصلا که زیاد نوشته شده در طور فاریف اسلامی که از خود ما شد اهل سنت زیاد از اینجور کتاب ها تدوین شده این راجع به اروعین حدیث که خب تمثل پتن برای این که پیغمبر فعیف فرمودن حفظ حدیث از کنم حضور واسه که این حدیث خب همینطور که الان اشاره از کردم از متعدد داره هم تو مسادر ما هم تو مسادر را تقریبا توی مسادر ما سندی رو که بخیرم بگیم الان آبرای اعتماده ما نداریم یعنی حسانید فراوان داره اما قابل اعتماد که درسته و حسایی باشه نه در مسادر در بسیار معروف احسانید هم همین داره اونجا هم همین مشکل رو داره اما خب به حسانید خیلی زیادی نه شده مخصوصا بعضی از متونش در بعضی از کتب مشهور ما یعنی ما از کردیم در بحث صدور هم سند رو لحاظ میکنیم هم مصدر رو نه فقط سند سند و مستر گاهی ممکنه سند زعید باشه اما مستر قابل اعتماد باشه بسید کتاب کافی مستر بالا دارو سند زعید در هر حال این برسانیز متعدد پیش ما پیش اهل سلمت ممکنه وجه استدلالش هم واضحه این هم کلام این که این حدیث به درد باب استدلال خود جیت نمیخوره چون اوصافی درش نیامده فقط منحفظه مثلا علی امتی من امتی عربعین حدیث هست و الله یا روزن عالمان فقیح هست نداره چه اوصافی در رو باشه و رضا غایت از اینکه این حدیث بسید در بیاریم حجیت و اغلایی یعنی هرچی ثابت بشه که حدیث رسول الله به قوائد و اغلایی و اما حجیت تعبدی از این باید در نمیم این یک نکته راجبی این باید، یه نکته دیگری می به این روایت اینه که اون ذیل حدیث که من حفظ اربعین حدیث حالا چی داره که اصلی برش بار میشه این ذیلش خیلی مختلفه در مطرون روایات مختلف. حالا چون من نمیخواب خیلی در محتل بکنم صحبت طولانی بکنیم فقط برای توجه ای به مصدر حدیث که در مسادر ما وجود داره اشاره بود و میکنم و راجع به مسادر احضر سنت هم که کتاب های مستقل شده البته این فکر خوبیه اگر از الان هم شده که این تکنگاری یعنی تمام اصالی این حدیث رو جمع آوری بکنید خیلی خوبه که سرمی چشیه و در زیدش هم راجع به اون تحتیجی بشه که سندش چه مطنش در این جهت بسیار کار خوبیه این در این کتاب جاور احضر این چاپی که پیش من هست از شماره شست به اصطلاح ایشون شروع کردم به بره. تا شماره 73 از 66 تا 73 مجموعه روایاتی که راجع به اروین حدیثه شماره 66 رو من سر این می خونم برای آشنایی آقایون چون این شماره تقریبا از همش بهتره در کتاب کافی در اصول آمده اول اصول کافی و ابن محمد اشعری استاد ایشون از بزرگان خوب ان معلذ محمد اثر ایشون بصری درست ایشون نمیشن بلکه تضییفی هم شده ان محمد ابن جمهور ایشون هم اهل بصره و روشای نداره بلکه تضییفی شده انا عبدالرحمن ابن ابی نجران هم ذکر او انا ابی این تقریبا میشه گفت سند نسبتا خوب بین ما اینه که هم چند جا خرابی آن داشت این به لحاظ سند سندش نیست اما مسترش کتاب کافیه قال من حفظ من احاقی سنا عربعین حدیثم این چالا عرض این یکی را را اولش خوندیم بعدم میاد در بعضی از روایات اهل بیت آمده که این عربعین حدیث مطلق نیست این خصوص حدیث ما باید باشه حدیث اهل بیت باشه نه مطلق حدیث اما معروف عربعین حدیث نه من احاقی سنا این یکی که داره این متنه وقت بلاHazard cezai که برش مترتب شده به سبب نالی عمر ضیاء معال من این متنی که ازیده در اون اونم مشکل نوازش هم داره کتاب علم کافی مرحوم شیخ مفید در اختصاص حدثنا جهر بن محمد ابن قولزی عن الحسین بن محمد الهاشی چرا شاید احتمالاً ترویس کلیی باشه چون ابن قوله به صاحب تابله زیار شاگرد کلیی چون شاگرد حسین بن محمد عشیری انا المعلم محمد باسیع محمد ابن جمهور انا عبدالرحمن الرحمن بن همون طور کافی رو در کتاب اختصاص البته احتمالاً مسئله قسمت اختصاص مال خودش اجر مفید باشه نه این حدیث احتمال ذرایت همدان تیا اصر مال شخص دیگری باشه به اونم میخواد یه. یه کم بخوریم چره تاریخیش بدیم طول میکشه و از بحث ما خارج میشه شماره 67 اصانید متعبولیست از اویون اخبار رضای مرموم شیخ صدوب از کردم شیخ صدوب در این کتاب اویون اخبار رضا از مجموعه روایاتی که منصوب بوده به حضر رضا که آوری کرده اصلا در زمان قدیم ما کتابی مثل ایشان در مجموعه مرביات از زن نداریم خیلی زحمت کشیده و از کردیم این کتاب مصنف مسنف مصنف در اصطلاح مردم مصادو هر چی روایت بیارید حالا سئو سهیم اینجا سند داره آقای نمتن سه حساب کردند اینا حساب نداره من چند روز پیش توضیح دادم مجموعه ای از احادیث به نام سهیفات ورزان حالا قایم نام مصنن دلمام ورزان در کتب اهلشون، نسخه نسخه‌ان آنها داد، لحوم جوز آنها داد، لحوم کرالشون، ام اصطلاحات مختلفی. یکیش تقریبا مشهورتره. اونه که مشهورتره همینجا است. نه اول اینجا. حدسان اول حسن محمد بن علی بن شا. این رو از مشایخ صدور کلر نمی‌شنازیم. نه در اهل سلنا، نه در شیعه. نه حدسان اول هستن. بر میگه لطفش حدسان اول قاسم عبدالله نعمت. این دسته معرفت نسخه‌ی کتاب صحیفه الرضا است از این نسخه متعدد و مختلف تقریبا معروف اینه که مرحوم نجاشی هم داره نسخه عبد الله احمد بن این آقا اینطور گفته عبد الله بن احمد الله به بصره قال حدثني ابي در سال 260 قال حدثني بعد علی ابن موسر رزا سن و, و ما این که از سرم اصطلاح از دوی به شماستند تاریخش اینه سد و نود و چهار و و یعنی قبل از این که حضر به خراسان تشریف یا که از در مدینه تشریف در اون سال ایشان شنیده از حضر رزا این یک نقطه رو کرد من از من را شده این آقای احمد ابن آمر ما توسیقی نداریم سنیام نزنن سنیام همین نصفر نهر کرده. این نصفر اینجوری نهر شده که پسر ایشان گفته پدرم در سال 194 از امامرزا شدیده من هم سال 260 یعنی 66 سال بعد از اینکه که ایشان از امامرزا شدن به پسرش نهرده حالا اینکه الان نداره تو این عقیما اما فکر می کنم جایی هم وقتی پسرگرد 26 یه همین سالم پدرم فوق کرده و در مسادره بندم اهل ص نه من ها موضوع ذ ندارم. خود پسر مت 324 ۳۲24 یعنی پسرم چیری در حدود۶ سال بعد از این فوق کرده بعد از این کهسب پدرشون میده در پرووندید. مرحوم نجاشی من چون یک نکتهی در اینجاست اینو فقط بگم وراز بحث خود رو بشیم بعد از اینکه این مطلب رو میاره و این نسخه رو نعلم میکنه احمد ابن آمه میگه و نصف خطو حسن است یعنی به عبارت دیگه خود مرحوم نجاشی هم این شخص رو نمیشناسه به جایی که بیاد خود شخص رو قیانه حالش بکنه که این احمد چکاره از پدرش پسرش عبدالله چکاره یعنی نسخت و حسنتون این نسخت و حسنتون توصیف ایست برای نسخه و امس کردیم که در ادری از جا که این چرا توزیار بعد چون این خیلی مورده مهم یا نیست مهم بخاطر امی سعیفت و که مرموم نجوشی در ادری از موارد شهادتی ایشون حس نیست حدسیه در از برویه و نسخت و حسنتون شهادت حقسیست <تصفيق> یعنی <تصفيق> به عبارتون افراد مرمون نجاشی شهادت مونده که به نظر من این نسخه خوبه این از اون این جا و مواد نظیر این اصولا اتباع قبض نجاشی لازم نیست یعنی ما تعبدن قبض نجاشی قبول نمی کنیم خب ممکن از ما خود اون نگاه خاکنه میگیم نه آی نجاشی نسخه حسنه نیست در همین بحث حدیث به استاد اول گزارش که معلومه آقای مرحوم یزدی, یزدی در شهر مکاسب نشسته کی دو باز کاظنگو تو هر دو سفر در, در ایبان آثار سفر و آثاری که از اهل بیت شده برای وجود داره مرحوم استاد میگن کجا وجود داره زمان مشکل عبارات و نقل این چه آثار صدقی است <تصفيق> این مطلب که ایشون میفرمایند و, و می این برای فنی کاره این عبارت نجاشی تبدابر نیست اینکه که ما متعبده به عبارت نجاشی بشیم خود ما مطلب نگاه میکنیم اونحق حسن نسخه رو میتونیم خودمون حس بکنیم درک بکنیم و شاید مرحوم نجاشی قدس الله نسه در حسن نسخه فقط مضامین حدیث رو نگاه کرده چون مرسون مضامینشون بد نیست حسن نگاه مرسا لیکن عرض کرده واقع مطلب اینه که در حسن یک کتاب نمیشه فقط این مذ... اصطلاح مضمون رو نگاه کرد. اخیراً در مورد رحبن بن ربهانی احادیثش جعلیه با اینکه خیلی هم این متن علل الهی و رسول انبیا از واضعه محمد من روز گفتن فقط از واه رحبن بن از راه عبدالله بن میمون قدا هم اومده اشتباه شده. تصحیح ما سبب دقت بکنید. این که ایشون میپنونه این نصحت و, و این تبدابنده شما رو فکر بکنید مثلا منبال مثال ولازم نیست فقط روی مرسی باشه جهات مختلف مثلا ایشون در سال 194 این کتاب رو شنیده یه نیچ کس نگفته جز پسرشونم بعده 66 سال و ازادو من همون سالی همی که پسرش فوت کرده یعنی نمیشه دیگه سوال کرده دیگه که آیا واقعا کتاب مال شماست پسرش ادعا میکنه که در این سالی که ایشون فوت کرده ایشون به برد کتاب را اجازه داده دقیقا این 66 سال از یک کتاب بگذره طبقه این تواری که الان رو کتاب موجوده طبقه این تواری 66 سال از یک کتاب از تعمال حدیث بگذره و اون وقت بکستی نگه جز به پسرش وقت پسر ایشون هم 324. یعنی ایشون معاصر پولینی چون پولینی 3129 یا 23 اشالا پسی من سابقا ارز کردم مسلم بین اصحاب ما 28 و 29 احتمال داره 24 باشه خود کولینیم مطرفای 24 باشه توضیح که سابقا ارز کردم چون نمیشن کولینی سنه تناسر و نجوم به صلاح وابش شعب, شعب در سال تناسر و نجوم فت کرده تاریخی هم تناسر و نجوم 34 و نه 28 لیکن همه سر 23 29 نمیشتن مشروع هم با تناسر نجومی که ذهی کردن نمیشت در حال در قصد اون مرحوم حتی یکی حدیث از این کتاب نیه یک دانه حدیث از کنم از مجموعه سحای کلرزا مرحوم کلینی چیزی نیه که از همش بخیم بگیم نزدیه تر به کلینی و واضح تر و روشند تر همین کتابه همین نصر این نصر یک قربه اسناد هم داره که مرحوم کلنی از این شخص از پدرش از عزازو به دو واسه میکنه شست و شیف سال اون طرفش از شست و چار سال از این طرفش هست. یعنی فاصله زمانی تویانی 130 سال به دو باسته علایه که بما کن این مثلا فضل ان نسخه حسن اصور آیا واقعا این حسن این نسخه است که اینطور که من نجاشی پرنده من فضل حدیثه من حفظ اولین حدیثم که در مسادر آمنا آمده و در مسادر معروف و درجیه که ما نیامده آیا میشه این قبول بکنیم سادر چون ما حدیثنا داره در این متن من حفظ علا امتی عربعین حدیثا یمتف به ها و اصحاب اومر قیامه فقیهن آه ما میشه قبول کرد با این شبازی هست این یک سنده من راجع به این سند صحبت کردم این یک سنده رحدت سنا ابو منصور فلا این سنده دومیه این هم شخصی زنامه احمد بن عبدالله حرفی شیبانی که بازم می‌شنمیش دستی، باز سرد دستومی داوود بن سلیمان فرآن علی بن موسا. از که در نسبت بین این صحائف و رضا یا مسند رضا. مسانی امام رضا مسالی در مراضا، اما مخصوصا منظره. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ایون مقداری از اینها رو نقل کرده ارزم کلمی شده پیش اهل سنت اصانیدی بیشتری داره خیلی معروفه این کتاب سعیفت و رزا. لیکن پیش خود اهل سنت هم این افرادی که هستن اینا توصیق ندارن مقدمشن لهون نصفتان انه رزا علیه السلام نه پیش ما دارن نه پیش اونها دارن وضع روشنی نداره اینم راجع به به اصطلاح ماله وقت در شماره بعدیش محمد ابن مکی شهیل کتاب اربعین ایشون هم برداشت سندی اوورده آخرش برنگه داوود ابن سلیمان عن رضا علیه السلام این همون سند سلو برنیش فهم نمی کنیم همون سیبه رضاست این من فقط نقطه شعر بکنم که آشنایی پیدا بکنیم تکسر سندی هیچ فایده نداره بعد از او از کتاب ابن زهبفی عربعینی اونم همجور این ابن محرویه یا مهروی انالغاری حالا بازی نوشته میشونم اهل قرزین بوده انالرزا انعابالی اینم همونطوره اون وقت در کتاب شمارش 68 خسال مرحوم شیف صدوه قال حدثنا ابن الوليد من اسره حزم چون کامل نوشته اختصار قال حدثنا شفا ان علي بن اسماعيل اعترن علي در این سند یکی از اشعار قوم ظاهرا ایشون هم به بغداد و عراق آمدند مقدار از میراث ها رو آوردن خیلی توثیقه اون طور واضحی ندارم اما بد نیز مونن ان عبد الله باز ایشون در ثوابون اعمال هم سناد دیگری داره که برمیگرده به علی بن اسماعیل، آن یا عبدالله دهقان، آله اخبارمی ابراهیم بن موسا المروزی این ابراهیم بن موسا مروزی مرزی معلم بچههای سندی بن شاهکو. امی که ازت موساد جبر زلدم کرده بود. این شخص خراسانی معلم بچه هاش بود معلم بچهای سندی بن شاهر به خاطر ارتباطی که با سندی ابن شایداش اجازه گرفت داره زندان موسطن جعفر رو بدنه همین ابرالین به اصطلاح موسای مروزی که در زندان مجموعه ای از روایات و رو از موسطن جعفر انعبیه انعبایه ان رسول الله نعرض تو توصیل هم نداره همین بارمان زندان معلم و بکره سندی ابن اهل خراسان بوده این رو خب اخیران یک بیسی سال قد آیه جلالی حفظ الله چاپ کردن بنام مستندر امام کازم علیه السلام این مستندر امام کازم همین کتاب ابراهیم نموسای مرزی خراسانی است و این نسخه ای بوده که بعدها توسط علی ابن اسماعی اشعری از اراق به قوم آمده تاریخ نسخه هم واضحه از وقت قول ابراهیم نموسا رو ما نمی پس این در سوابال اعمال یک سرد داره در خسال یک سرد داره اختصاص شیخ مفید هم همین تن از او بوده اما احمد بن محمد نیزان بعض از اصحابنا احتمالا احتمالاً بعض از اصحابنا همین علی بن اسماعیل اشعری شما اشعری خوب میه قال حدثني ابن ابراهیم مروزی عن حسن عبد الحسن اول قال قال رسول الله ما من, من امه دی اربعینه حدیثا من ما یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله عزوجل يوم القيامه صحیحن آدما روشن شد تاریخ این حدیث پس ارز کردم اگر آقایون در ذهنشون باشه چند از پیچه کردم این مسانید حالا اون عنوان آمش صحابه اون عنوان آمش صحابه ازده ای از نباهای صحابه از سالهای صد بعد از اجرادشون از اون صحابه و رسوله ها کتالهای رو کردن ما در شیعه هم مسانید ابلغهی دیم اولیشم شما ارز کردم امام حضرت سجاده که مصند زیده چیچه زیدی ها معروف زیدی ها اعتبار داره همشون از امام باقی نداره امام زیاد داریم از امام موسی جعفر، هم چند تا داریم که یکیش همینه موساده ابرائی مروزیه ابرائی موساده مروزیه از حضرزا خیلی داریم که الان سشافش رو خوندیم حضرزا خیلی داریم ما از ا حالا اسمش این اسم جعریه من هم رمایاتید که طبیعه از اینطوریه از حضر از حضر جانب یکی داریم از همه بعدی هم نداریم دقیق میفهم یعنی مثلا اراده ما مسکری داریم اینکه اما با ارمان اینکه یه مجموعه باشه اون مجموعه اینطوریه از هم یکی دو تا هم از موسن, موسن و جعفر داریم مشهور مال موسن جعفر همینه این مشهور نسخه ابراهیم ابن موسای البته در اینجا را میشه ابراهیم مروزی یکی دیگه نمیشه ابراهیم ابن موسای مروزی اسمش هم در اسم خود پدر جا جایی داریم اینم راجع به این قسمتی که خدمتون عرض کردم باز در شماره 69 این سندی رو که ایشون در اینجا در شماره 69 از خسال 102 مرد از اهل سنت بر میگرده به انصب نماله از سنیام دارن و عادتن من یک جوابی رو خدمت شما عرض کردم غالبا روایاتی رو که ما مثل صدوق یا شیخ طوسی از اهل سنت نقل از مشایخ درجه متحمد بودن. در, در درجه سوتاره اهل سنت این ولادت متعمد بوده مثلا شیخ طوسی در بغداد مربوط در از 2 های سنت نمیذاره در 3 و 4 شیخ صدوق هم همینطور یا مثلا فرغانه مرغانه در جاهای دوری مثلا نیشابوری چیزی از این درجه 3 و 4 غالبا نه ممکنه حتی گاهگاهی اون حدیث از کتاب بخاری باشه تو زیاده مفصل صابر هست نه از کتاب مسلم باشه از کتاب کتاب‌های معروفشون باشه اینم یک چیز عجیبیه مثلی که عبا داشتن در مجالس معروف اهل سنت حاضر میشن از مشایخ ما از مشایخ خودمون که در مش... از مشایخ درجه که اهل سنت از اون طراز اولشون نرم از بزرگان و محدثی این در رسوه مشاهد بخاری منحصل در فضلان شازانه من کسی دیگه نهیدم که در این درجه حتی صدر نبدالله نسبتاً از مشهورش رو میکنه اما باز درجیه که من تو فضلان شازان دیدم که گاهی از مشاهد خود بخاری نرم میکنه که من روش با بخاری در اون درس حاضر میشده وفات فضلان شازان چهار سال بعد از بخاریه بخار خب اینجا باز داره مثلا یورید رو بیهیر وجه الله و دارالاخره میگم مثل خود حدیث هم اضافه بر اون فرم این هم راضیه به شماره 6 شماره شستونه شماره هفتاد یه روایتیست که باز از طرق اصحاب ماست بر میگرده به همون محمد ابن جمهور اینجا نوشد من یاد بله محمد ابن جمهور نوشد تو بعضی از این سخ محمد جمهور قومی قومی نده امیه اشیریف در اهل بسره بنیام بنی هم این رو برمون صدو حدثان و عبی حدثان صد آله حدثان و احمد ابن حسین ابن سعی اصورم احمد بن حسین سعی شاگه کسر این حسین سعیل ایشون احمد خیلی مرد مولایی همه هست خیلی عجیبه با اینکه که مثلا فرق بین پدر و پسر زیاده تمام مشایخ پدرش رو در کرده احتمالا مرمون سیدیشون در سن بچگی پیش مشایخ خودش برده تمام. الا, الا یک نفر رو خیلی مرد در ولهاز حدیثی شمه بالایی داره اما متاسفانه در کتب ما اسمش نیزده همین درمی کتب شیف صدو نادرم جوی هاشمی چون ظاهرا شاد اهل بلور مزارب فاسده. یاور و آن مزارب فاسده. لذا بایاتی ایشان تقریبا حذف شده حدس خداوند مردم ملایی سرساهم چتر حسین سعید باشه دیگه یک وقتی هم یک صحبت دیگه راجوییشون داشت باز بقیه صحبت‌های وقتی حالا چون خیلی هم ارزش داشت ال محمد ابن جمهور امین که اهل بحثه از شده انا عبدالرحمن نوین اجران عن عاصم محمد بن مصعب در اون کتاب کافی ابن عبی نجان امن ذکر ابو ابی عبدالله در کتاب اختصاص رفع ابو عبی عبدالله در اینجا در نسخه احمد ابن سعید اسم اون افراد برده شده برحال سند به خاطر محمد ابن جمهور امین خالی از زعف نیست این داره منحفظ من شیعت ناروین حدیث هست در اونجا داشت منحفظ من احادی سنا عربین حدیث هم. از متن حدیث خیلی مشرفه مستره به همین نسخه عبدالرحمن عربی نجران هم برا باز هم همین هم اختلاف داره این هم به این حدیث در خصال مرحوم شیخ صدو باز از طرق اهل سنت به همون طریق که اینجا ابن جرید نوشته ابن جرید در اطا ابن عباس من حفظ منور به 40 حدیثاً من السنة داره. كنت شفیعاً الله و كنت له شفیعاً یوم القيامة. ببینید، جزاش با اون فرق کرده. اینم معلوم صدوق از مصادر اهل سنت گرفته. مرحوم محمد علی فارسی در کتاب اوذۃ المواظین مرسلاً این شو هم نقل کرده که همونه مرحوم آقای به محمد بن احمد بن صابوری فی اردبیری ایشون هم اینجا بیا ایشون از صدرش از گذاشته این باز ذیل صدر 68 باشه بله اون رسول از طریق اهل سنت اینا که هستن اهل سنت هستند بله قال حدثنی ابو امران موسی بن ابراهیم مروزی اینه خویش اشتباه گذاشته زید حدیث موسی ابراهیم مروزی خراسانی حالا حدیث الان موسم توضیح این معلوم شد این کتاب هم پیش اهل سنت بوده هم پیش اهل شیعه بوده این هم راجع به این کتاب شماره بعدی که من از یه نمیخواهیم مرموم ابن زهره در عربعیدش این رو برمیگردونه به ابو حریره اینجا باز جریف چاپ کرده این هم غلطه برمیگرده به اون به اصطلاح ابو حریره و به همون اون مطنی که مرحوم شیخ صدو رحمه الله در کتاب خسال اول سند به سنیه ها شد مثلا بعضیشون یا مشایخ غیر معروف به هر حال کل سند توش مشایخ غیر معروف داره از هنان ابن صدیر. ما اینه الان نداریم من حفظ امنا عربین حدیثه این یکی باز متنش مرحوم حلال و حرام به اس لای اومل قیامه فقطقی حال من ولم یا عذب این هم باز در متون دیگه نبود بهق کردیم چطور شد؟ من یه مقدار متون رو برای شما خوندیم و یه حدیث واحدی در چه سال مرب شع در باب چهل که اونگه از تمام مینم چ گفت عجیب و غریتر حدیث غریب. این رو ایشان م شره صدوب من دیگه بخوام طول می سه تا استاد یا دو تا استاد دو تا برجا سه تا سه تا استاد ایشون اسم ببره این تکرار شده همین اساطی در سنده زیاد جامعه هم هست تکرار رو گه از اومنی ها بودن که به لحاظه به اسطلاح علمی که ما الان میگیم مشاهد در از دو سه و چار هست خیلی آشنایی گونه نداریم اینا میان در تهران یا در خدمت محمد نبی عبد الله الاخدی کوفی ابو الحسین ایشون به اسم محمد ابن جعفر ارسدی ایشون اصالتا عرب بوده از بنی اسد بوده مولا نیست به اصطلاح و میاد از طرف نائب نظام سوم و دوم و سوم میاد ساکن الری میشه برای نشر دعوت تشیع خیلی مرد بزرگواری است ایشون از شخصی به نام موستن امران نخعی نامه میکنه همین سند به اینه سند زیاد جاواد هست همین سند مصعب بن عمران بعضی از جاها در کتاب وسل موصع عبد عبدالله نخعی هم آمده که ما درست نمی‌دونیم واذ این واقعا اسمش امران بوده یا عبدالله بود ایشون پسر برادر نوفلی معروفه نوفلی حسن اثر کنیم سربرادرونه چون نوفلی ابا اثر و ساکن ری میشه ظاهرا این پسر برادرش هم با بوده لذا داره انعم حسین بن یزی. این حسینی نوفلی معروفه. ابن اسماعیل ابن فضل الهاشمی که نوفلی از دو نفر، یکی اسماعیل ابن فضل هاشمی، اسماعیل فضل هاشمی این برای هاشمه برمیگرده به فضل ابن عبدالمطلب، سرعم‌های امام صادره ایشون ساکن مدینه بوده. و اسماعیل ابن ابی زیاد، این اسماعیل ابی زیاد همون سکونی معروفه. شد پس بنابراین در حقیقت این روایت از کتاب سکونیز من توضیح پرده نرز کردم احتمال بسیار قوی داره که سکونی مدار روایتی در تهران نقل کرده افتادان در کوفه بوده بعد در تهران این کتاب رو نوفلی از سکونی در کوفه در تهران نقل کرده که مرموم محمد اون جعبر اصدی نوشته و این سه تا استاد صدوب و احساس تا شیخ. از قوم رفته بودن خدمتی ایشان در غیب و به خدمت ما الان این رو جای دیگه کلر نداریم یعنی کلن ما در آثار سکونی چین حدیثی نداریم انصافا هم آثار جعل برش واضحه ما این رو الان جای دیگه نداریم حالا قولمون یخیه که هم بگیم داریم مثلا اسماهیل ابن عویزیاد جمیعا ان جهتران محمد ان عفیه از کنون مسند من به حلوز ارت کنیم که مستند ایمام ساده مقدار زیادیش از همین طریق تکنیه این عبی هن آبایی قال ابن رسول الله او سائل و عمیر المومنین علیه ابن عبی طالب یک مشکلی که در این حدیث من خطه زهر در این اصانی که ما خوندیم شعن نزول این حدیث هم گفته نشده که مثلا پیغمبر به چون رسولتی ایمت ای اینجا داره که او سائل علیه. به عنوان وصیت امیر المومنی من کلاران اعز کردم ای داریم نام وسایی پیغمبر و امیر المومنی که به لحاظ سندی مشکل دارن بعض از آقای محاسین عبدالله نر جمع کرده، خوبه کار خوبیه الان یکی شب اینه به عنوان وصیت، و فی ما او سابه انخال یا علی من حفظ من امتی عربعین حدیثه یک دو به الله عزیز جل عبدال آخره حشره الله يوم القيامه ببینید من و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولاکه رفیقها او اصلا کلن یه عوض کرده اون زیله حدیث کلن عوض شده روشن شد مخصوی مداره نه این که خواستم تو بحث بود که اون یک حدیث واحد و این همه سند سندهای عجیب قریب و, و معطنه های عجیب و بعد از همهش بردتر از همهش عجیبتر اینه اون فقال و علیه السلام اخ، یا رسول الله اخبری ما آده الاحادیث این منحسن به همینه وقتی اون تا حدیث رو پیغندر بعدی به ما میمید محفظه الو این فقال هست فقال انتومن الله وعده لا شریکه لد و تعبوده ولا غیره الا انقال فا ها من استقام علیها ها و حفظها از ام میمن امتی دخلا جمعه رحمت الله خیلی آثار و جلد, واضحه. واضحه. حالا جلد در این حدیث واضحه کاملا واضحه حالا کی این حدیث جعل کرده در این سند؟ من الان نمیتونیم کشکل سوید اضافه بر انفراد این که خود پیغمبر چهل و کلمه برموده باشد که این بشه چهل حدیث پیغمبر این چهل حدیث از طرف من این انصافا آثار کاملا واضح جعل و برزارش هست این منفرده در مجموع احادیثی که خوندیم منفرده این هم تا اینجا حالایی که من وقتو دارید تمام میشه من سریعاً بخونم از جمله روایاتی که ایشون باز مرحوم آی جلی پشت سر این 40 فهد سروشن از جمله روایاتی که پشت سر مولانا روایت که در کتابت حدیثه اینجا حدیث شماره 74 مرحوم شیخ کلینی از معلل از همون طریقی که الان اشاره کردیم توش معلل محمد داره که اشکال داره انا ابي مصير قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام ما اكتب في انكم لا تحفظون حتى تكتبوا اولش این به حدیث معنیش باشه حالا مثلا زدنش به حدیث الا رفی به حدیث نامه ببینید ایشون در شماره 75 این رو آورده در شماره 77 خوب بود اینو بعد از اون می چطور شده ایشون فاصله انداخته مرحوم حبرسی سا... کتاب مشکات الاموار ایشون نبه مرحومه ساب مجموع الویان کتاب مشکات الاموار چاب شده غزیبه و جیدن کتاب قشنگیه خیلی احادیث خوب انتخاب کرده انصافا انسان حبراش باشه خیلی انتخاب زیبایی داره انا عبی وسیر قال مرسل البته کتاب دخلتا عل... عل... عل... عبی عبدالله فقال ما یم نعو کن من الکتاب انکم لن تخت هدو حتی تخت زخ همونه فا من اندی رحت و من اهل عن این عناهشیارم تویش نمیده که من رسول الله. باز در کتابی, کتابی هست که چار شده اصول سیتاده عشاء صادقانه شریعه جی. و از تکرار بکنیم. کتاب آسیب نهمه، عبی بصیر. قال دخل تو عبی عبد الله علیه السلام. فقال دخل علیه من اهل بث از سون اینجا کلمه حدیث داریم و کتابو ها فمایم نکن من کتاب اما ان نکن نکنلا و حتی تک. این احاددیث به چند سر حتماه او و کهصدش همش غ نقیه ن دی. و سوال ممثل